دانشویان عزیز به کلاس دیگری از دانشکدهی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. باز هم در درس امروز میخوایم ارمیای نبی یکی از انبیای بزرگ رو بررسی کنیم. خداوند چیزهای زیادی از طریق موقعیتهای غمنگیز و از به بازگشت قومش از او به ما یاد میده. ارمیای نبی وفادارانه موعظه کرد. حتی زمانی که مردم نمیخواستند به پیغام اون گوش کنن. با هم به دقت گوش کنیم و ببینیم خدا امروز میخواد به قلبهای ما چه چیزی بگه این شما و این معلم ما در جلسه قبلی دیدیم که ارمیا یک واعظ عملی نمادین بود ارمیا و هزقیال هر دو در چیزی که به اون مععزه های نمادین میگیم بسیار قوی هستند ارمیا مععزه ظرف از نو ساخته شده را به ما میده و در اون میگه که قوم خدا قرار هست به اسیری برند. این اسارت شبیه از نو ساختن یک ظرف سفالی زیبا هست. او کوزهی رو دیده بود که یک کوزگر می ساخت و اونطور که باید باب میل کوزگر نشده بود. پس ظرف رو شکسته بود و بعد از اون ظرف دیگری ساخته بود. ما همینطور به معزهی که نقطه مقابل این معزه بود نگاه کردیم که در اون ارمیا ظرف زیبایی رو در کف معبد شکست و گفت شمایی که به سارت میرید مانند این ظرفی هستید که از نو ساخته میشید اما اونهایی که از رفتن به اسیری امتنا می کنند مثل این ظرفی هستند که خرد خواهند شد هر دوی این موعظه ها قدرتمند بودند در سرتاسر سر کتاب ارمیا ما باید دنبال کاربورد های عملی موعظه های بزرگ ارمیا باشیم گاهی ما تجربیات تنبیه رو داریم جایی که خدا میخواد تنبیه کنه و از ما ظرفی تازه بسازه گاهی ما این توانایی رو داریم که حداقل طوری گناه کنیم که مانند اون ظرف خرد شده بشیم که عواقبی اجتناب ناپذیر و زخم‌های بهبود نیافتنی رو تحمل می‌کنی. به لحاظ کاربودی اونها از جمله کارهایی هستند که ارمیا در موعظه‌اش به ما نشون میده. ارمیا همونطور اون پیغام رو در موعظه‌ای به نام دو سبد انجیر به ما داده. در این موعظه ارمیا گفته او رویایی از دو سبد انجیر داشته. بعضی از اون انجیرها تازه بودند و بعضی از اون انجیرها کپک زده و پوسیده بودن. اونقدر فاسد که قابل خوردن نبودن. خداوند به من گفت ارمیا ها چه میبینی؟ من گفتم انجیر. بعضی ها خیلی خوب هستند و بعضی هاشون بد. خداوند گفت انجیرهای خوب بیانگر نیست که به بابل میرند و من اونها رو برای خیریت خودشون فرستادم. من میبینم که اونها رفتارشون درست شده و اونها رو دوباره باز خواهم آورد اونها رو کمک خواهم کرد و آزار نخواهم داد. اونها رو غرض خواهم کرد و نخواهم کرد. به اونها قلبهایی خواهم داد که به من پاسخ بدند. اونها قوم من خواهند بود و من خدای اونها. چون اونها با شادی عظیمی به سوی من باز خواهند گشت. اما انجیرهای پوسیده نشاندهنده صدقیا صدقیا پادشاه یهودا هست. رؤسای او و بقیه مردم اورشلیم که در اورشلیم ساکن هستند و یا در مصر ساکنند همه آنها را تسلیم خواهم نمود من با آنها مثل انجیرهای پوسیده رفتار خواهم کرد که قابل خوردن نیستند بر آنها قحطی و کشتار و بیماری خواهم فرستاد تا همشون را هلاک کنم این پیغامی بود که ارمیا مرتبا می کرد وقتی که اورشلیم توسط بابلی ها سقوط می کرد دو تیپ مردم در اورشلیم بودند اونهایی که می دونستن بابل تنبیه خداست، به بابل رفتند و تنبیه خداوند رو پذیرفتند و توبه کردند. و کسانی که مانند صدقیا ها نمی که این اراده خداست و معزه ارمیا رو تکسیب می کردند و از اراده خدا و بر علیه بابلیها سرکشی می کردند، مانند اون ظرف خرد شده و انجیرهای پوسیده شد. ارمیا موعظه دیگری هم داره که میتونیم به طور خلاصه بهش نگاه کنیم. بعضی از های او برخلاف چیزی بود که امروز ما بهش اومانیزم میگیم. در دوره ما ایدئولوژی‌هایی هست که به وجود اومده و قوی تر میشه و ما فکر می‌کنیم که موقتی و گذرا هستند، اما گاهی اونها اصلا تازه نیستند، بلکه عقاید قدیمی هستند که بازسازی شدهاند عقایدی مانند اومانیزم که به این اعتقاد داره که انسان میتونه هر کاری کنه، ریشه در تاریخ کوهن داره. اونا میگن من ارباب سرنوشت خودم هستم. من فرمانده جانم هستم. اینها عقاید امانیستیه. اومانیست ها میگن من هستم، پس میتوانم. شما هستید، پس میتوانید. شما هرچی که لازمه دارید، میتونید هر کاری بکنید. این فقط به خاطر اعتماد به خود هست. اعتماد داشتن به خود. اما همونطور که ما زندگی اشخاصی مثل موسی رو مطالعه می کردیم برخلاف این رو دیدیم ما این اصول روحانی رو دیدیم که در زندگی اونها به وجود اومد که می گفت من نیستم بلکه او هست و او با من هست من نمیتونم اما او می تونه و او با من هست و چون او با من هست من میتونم ارمیا وقتی این معذر رو که در باب ده هست میکنه کاملا برخلاف این تفکر هست من می دانم ای خداوند که انسان خودش نمیتواند تواند کاری بکند انسان خودش نمیتواند در راه درست گام بردارد بعد به این نگاه کنید لعنت بر کسی که بر انسان اعتماد می کند و به بشر اعتماد می کند و دلش از یهوه منحرف باشد دل چه کسی از خداوند منحرف میشه بیت آشنایی در یکی از سرودها هست که میگه بازوی انسان تو را رد میکند و تو جرعت نداری بر بازوی خودت تکیه کنی نویسنده اون سرود مضمون سرودش را از موعظه ارمیا در باب برداشت کرده بعد ارمیو اظهار منفی از اون حقیقت رو به ما میده مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و اعتماد او بر خداوند باشد این فلسفه کاملا برخلاف فلسفه اومانیزم است خیلیا هستند که عقیده دارند نیازی به شبان ندارند اونا هرگز مثل گوسفند بع بع نمیگن اونا هرگز مشکلی ندارن که نتونن حل کنن اونا به قوه ابتکار و هوش و توانایی انسانی تکیه می و ایمان دارند که همین کافی است اما شما به یک شبان نیاز دارید شما به مکاشفه از خدا نیاز دارید و به نیروی پویا از خدا نیاز دارید که از اون مکاشفه اطاعت کنید این فلسفه یه که تمامی انبیا تعلیم می دادند همونطور که گفتم دل ارمیا شکسته بود درباب هشت ارمیا گریه میکنه کاش که از غم خود تسلی آفتم، دل من در اندرونم ضعف به هم رسانیده، اینک آواز تزروع دختر قوم من از زمین دور می آید که آیا خداوند در سهیون نیست و مگر پادشاهش در آن نیست؟ پس چرا خشم مرا به بوتهای خود و اباطیل بیگانه به هیجان آوردند؟ موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. به سبب جراحت دختر قوم خود مجروح شده و ماتم گرفتهام و حیرت مرا فرو گرفته است آیا بلسان در جلعات نیست و طبیبی در آن نی پس دختر قوم من چرا شفا نیافته است چرا خدا کاری نمیکنه؟ چرا او کمک نمیکنه؟ این رویای ارمیا از فاجعه غلبه ها و به دنبال اون به اسارت رفتن بود قلب ارمیا به خاطر قلبه بابلی ها و به اسارت رفتن مردم شکسته به این دلیله که به او نبی گریان میگن علاجی که ارمیا برای این ارتداد و یا گناهی که باعث این فاجعه شد پیشنهاد کرده در موعظه بزرگ دیگری در باب چهار اومده زیرا خداوند به مردان یهودا و اورشلیم اینطور میگه زمینهای خود را شیار کنید و در میان خارها مکارید ای مردان یهودا و ساکنان اورشلیم خیشتن را برای خداوند مقتون سازید و گلفه دلهای خود را دور کنید مبادا حدت خشم من به سبب بدی اعمال شما مثل آتش سادر شده افروخته گردد و کسی آن را خاموش نتواند کرد این معزه زیبای ارمیا شبیه معزه خداوندمان من هست که در اناجیل اومده و به اون مسئله برزگر میگیم عیسی گفته که وقتی کلام خدا معزه میشه مثل اینه که برزگری بزر میپاشه اگه امروز به سرزمین مقدس برید، هنوز میتونید در تبه های دور کشاورزی رو ببینید که کیسه ای زیر بغل داره و با دستش بزر میپاشه. بنابرای گفته ی ایسا در چهار جای مختلف میفتن. چهار نوع خاک، چهار واکنش مختلف به کلام خدا رو به تصویر میکشه. اولین نوع خاک در کنار راه است و زیر پا. بزرهایی که اونجا میفتن نمیتونن در خاک نفوذ کنن. عیسی گفت اینها کسانی هستند که کلام خدا رو میشنوند و اما کلام خدا در ذهن اونها نفوظ نمیکنه. کلام خدا برای اونها قابل درک نیست. مرغان هوا میان و با اون بازرها رو بر میدارن. تفسیر گفته ی ایسا اینه که شریر کلام خدا را قبل از اون که بتونن بهش فکر کنن از اونها میدزده در وصف دومین دسته از مردم عیسی گفته این تصویری از مردمی هست که وقتی کلام خدا تعلیم داده میشه یا موعظه میشه تأفکار اونها نفوذ میکنه اما در اراده اونها نفوذ نمیکنه دومین نوع خاک که عیسی گفته خاکهای خشک هستند بذر بر روی خاک میافته اما خاک روی سخره است ریشه ها پایین میرن اما به سخره برخورد میکنند و برمیگردند و وقتی آفتاب به اون میتابه این گیاهان میسوزند و هیچ ثمری به بار نمیارند اینها کسانی هستند که کلام رو با شادمانی دریافت می کنند، اما اجازه نمی دند که این کلام در اونها ریشه بکند. در این دسته عیسی گفته بذرها جایی میافتند که هیچ چیزی در زیر خاک نیست که مانع رشد و نمو بذر بشه، اما بالای خاک علفهای هرز یا خارها هستند. خارها گیاه رو خفه می کنند و این گیاه هم هرگز نمی تونه سماری به بی بار بیاره. عیسی توضیح داده که کلام در ذهن اونها و امیال اونها نفوذ میکنه. اونها واقعا میخوان که کلام خدا رو به جا بیارن اما با علایق این دنیا و با فریبندگی ثروت و لذات این دنیا محاصره میشن. این خارها گیاه رو خفه میکنن و اون هم نمیتونه سمری به بار بیاره. بنا گفته ی عیسی، چهار رومین دسته جاییه که هیچ ای زیر خاک نیست و هیچ ای بالای خاک نیست و این بذر ثمر میاره. بعضی سی بعضی شست و بعضی صد برابر در این تمثیل عیسی از معایزه ارمیا استفاده کرده ارمیا این تمثیل رو در معایزه خودش در باب چهار کتاب ارمیا آورده ارمیا داشت کلام خدا رو برای قوم خدا معایزه می کرد وقتی به قوم یهودا میگه زمینهای خود رو شیار کنید داره استعاره بسیار شیوایی رو در معایزهش بکار می بره زندگی شما مثل زمین های زمینهای بایر زمین که به آیش گذاشته شده و به حال خود رها شده هر هفت سال یک بار مردم یهودا زمینشون رو به حال استراحت رها میکردند و به این ترتیب اونها سبت رو برای زمینهای خودشون هم مراعات می‌کردند موعظه ارمیا های زیادی داره تمامی مشکلات مردم و شرایط زندگی اونها خاکی رو در زندگی اونها آماده میکرد که بذر کلام خدا در اون کاشته بشه به عبارت دیگه چیزی که اونجا میگه اینه تمام تجربیاتی که شما دارید برای جلب توجه شماست و حالا به جایی رسیدید که آماده اید کلام خدا رو بشنوید. وقتی عیسی مسئله پاشیدن بعض رو تعلیم میداد گفت توجه داشته باشید که چطور میشنوید. این خیلی مهمه که کلام خدا رو چطور میشنوید. عیسی مطالب زیادی درباره نزدیک شدن به کلام خدا به ما تعلیم میده و همینطور هم انبیا این موعظه در این باره زمین زمینهای بایر خودتون رو شیار کنید خدا خاک زندگی شما رو برای کلامی که به جهت شما آماده کرده آماده می کنه. حالا زمین های خودتون رو شخم بزنید و خاک زندگیتون رو برای دریافت بذر کلام خدا آماده کنید ارمیا همینطور از ختنه شدن ها صحبت می کنه. بسیاری بر این باورند که پولس رسول که اغلب اون کلمه رو اظهار می کرد، اون را از بیانات ارمیا گرفته بود پولس به ما میگه که تعمید برای ما به منزله ختنه برای مردمان عهد قدیم بود. ختنه آیینی بود که قوم یهود به وسیله اون ایمان خودشون رو اعلام میکردند. آیین میتونه چیز پوچی باشه. یک آیین بدون واقعیت میتونه پوچ و معنی باشه. عیسی، رسولان و انبیا بر فرق اظهار و زندگی کردن اون تاکید میکنند. بنا به گفته انبیا، بنا به گفته رسولان و بنابه گفته ی ایسا انجام دادن همیشه مهمتر از اظهار کردن هست. وقتی اونها از خط نشدن قلب صحبت می کنند، چیزی که منظورشون هست اقرار شما نیست. تعمید شما مهم نیست. چیزی که مهمه زندگی کردن و نشون دادن اون چیزی که ایمان دارید و اعلام کردید. آیا قلب شما آمادگی پذیرش پیام خدا رو داره؟ خدا می‌خواد که با شما رابطه داشته باشه و شما میتونید با او رابطه برقرار کنید آیا به این ایمان دارید اگر ایمان دارید فقط این را اعلام نکنید بلکه طبق اون زندگی کنید این کاربرد حیرت انگیز کتاب ارمیا هست. ما خلاصه بسیاری از موعظه های بزرگ ارمیا را بررسی کردیم اونها به ما واعظین دانشگاه میگند که اگر ما خطاب به قلب شکسته موعظه کنیم همیشه شنونده خواهیم داشت چون که در هر گروهی دلشکسته‌ای وجود داره تمامی مردم این که ارمیا خطاب به اونها موعظه میکرد دل شکسته بودن و ارمیا نه تنها خطاب به شکست دلان موعظه میکرد بلکه خود نیز با قلبی شکسته مععزه میکرد ارمیا در باب هفت آیات هشت تا یازده اینطور موعظه میکنه فکر میکنید چون معبد اینجا هست شما رنج نخواهید کشید اما شما به سخنان دروغ و بیپای امید بستهید دزدی میکنید و مرتکب زناب و قتل می شوید، به دروغ قسم میخورید برای بط بل بخور می سوزانید و خدایان بیگانه رو می و بعد به خانه ای که به نام من نامیده شده آمده در حضور من می ایستید و میگویید ما در امن و امانیم و باز بر می گردید و غرق کارهای زشتتان میشوید. شوید. اگر خانه ای که نام مرا بر خود دارد آشیانه دزدان است، هر آنچه در آنجا می کنید می بینم. این میتونه ما رو به فکر فرو ببره که مععزه عیسی در معبد از مععزه ارمیا گرفته شده باشه. وقتی که ایسا سوار بر الاغ وارد اورشلیم شد و معبد رو پاکسازی سازی کرد، یادتونه او به کسانی که در معبد دست فروشی میکردن چی گفت؟ به اونها گفت، مگر نوشته نشده است که خانه من خانه دعا برای همه قوم ها خنده خواهد شد، اما شما آن را لانه راه زنان ساخته اید. 이사 وقتی این سخنان رو گفت از ارمیا نقل قول می کرد. از انبیا مکرراً در عهد جدید نقل قول هایی رو می بینیم. وقتی شما رسالات پولس رسول و یا رسالات سایر رسولان رو میخونید گاهی نمیدونید که آیا نویسندگان عهد جدید خودشون مکاشفات شخصی داشتن یا نه، چون اونها بیشتر از عهد قدیم نقل قول می می‌کنند. خصوصاً بیشتر از اشعیا و ارمیای نبی نقل قول شده. وقتی که همش اقرار باشه و عمل نباشه، چاره ارمیا برای فقدان عمل اینه. او میگه از صدای من اطاعت کنید، من خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. این در جدید هم نقل شده. گفته های شبیه این زیاد هست که میگه ما فرزندان خدا هستیم. اما در قدیم انبیا گفتند وقتی شما مثل فرزندان خدا زندگی کنید، اون موقع فرزندان خدا خواهید بود. بنا به گفته انبیا ما باید از کسانی که زندگی دنیایی می کنند جدا بشیم و از آنها فاصله بگیریم و چیزهای ناپاک رو لمس نکنیم. اون موقع خدا برای ما پدر خواهد بود و ما مثل پسران و دختران و او خواهیم بود. این چیزی بود که ارمیا و دیگر انبیا موعظه می کردند. در بررسی کتاب ارمیا ما متوجه شدیم که بهترین روش برای این بررسی خلاصه کردن بعضی از معزه های بزرگ ارمیا هست که در این کتاب اومده. به جز دیگر معیزه ارمیا که قبلا بررسی کردیم میخوام بعضی از معزه های او رو بررسی کنیم که در اونها او بار حقیقی معزه رو نشون میده به معزه که در باب 23 هست گوش کنید، وقتی این قوم یا نبی یا کاهنی از تو سوال نموده و بگوید که خبر بد خداوند برای امروز چیه؟ به اونها بگو کدام خبر بعد؟ خود شما خبر بد هستید، چون خداوند وعده داده شما رو ترک خواهد کرد. و اگر کسی از قوم یا انبیا یا از کاهنین درباره پیغام خداوند با تمسخر صحبت کند، او و خانواده را مجازات خواهم نمود. می توانید از یک دیگر این سوال رو بکنید. خداوند چه جوابی داده است؟ و یا خداوند چه گفته است؟ ولی دیگر عبارت پیغام خداوند را به زبان نیاویید. چون هر یک از شما سخنان خود را به عنوان پیغام خدا بیان می کنید و با این کار کلام خداوند قادر متعال را تغییر می دهید. می توانید از نبی بپرسید خداوند چه جوابی داده است و یا خداوند چه گفته است. ولی اگر صحبت از پیغام خداوند بکنید در حالی که من گفته آن را با بی احترامی بر زبان نیاورید آنگاه شما را مانند بار از دوش خدفکنده شما را با شهری که به شما و پدرانتان داده بودم از حضور خود دور خواهم انداخت. اونها ارمیارو رو مسخره میکردن چون هیچ وقت چیز خوبی برای گفتن نداشت. پیام او همینطور طور که دیدیم پیام مصیبت بود چون مصیبت در راه بود. دلیلی که چرا امروز کتاب ارمیا رو داریم و به اون احترام میذاریم اینه که هر چیزی که او گفته به واقعیت پیوسته. خبرهای فاجعه و بدبختی اما هم هم همینطور هم امید، علا اینکه این که ارمیا همیشه بر خبرهای مصیبت و فاجعه تاکید می کرد، اما پیوسته، پیام و امید هم به همراه داشت. او گفت شما از اسارت باز خواهید گشت و این تنها امیدی بود که قوم داشتند. به همراه خبر بازگشت از اصارت، ارمیا مکاشفه آمدن مسیح را هم نبوت کرد. معزه های نبوتی مسیح های ارمیا امید نهایی قوم اسرائیل بود و همینطور امید همه ما. همه این نبوت‌های ارمیا تحقق یافتند. مردم عهد قدیم همیشه به انبیایی که نبوت‌هاشون تحقق پیدا می کرد، احترام قائل میشدند. ارمیا فاجعه رو نبوت کرد و فاجعه آمد. او بازگشت از اسارت رو در پیام و امیدش نبوت کرد و هفتاد سال بعد از اون تحقق یافت. وقتی به کتاب دانیال میرسیم، بازگشت از اسارت رو خواهیم دید. دانیال نبوت ارمیا در مورد بازگشت از اسارت را نقل میکنه. نبوت ارمیا الهام بخش دانیال برای نبوت معروف هفتاد هفته بود که از استقرار مجدد همه چیز و از آمدن مسیح خبر میداد. نبوت بازگشت از اسارت بعد از هفتاد سال الهام بخش دانیال برای نبوت هفتاد هفته بود که بزرگترین نبوت مسیحایی در کتاب مقدس است. ارمیه نبی خدا هست چون نبوت هاش همه به واقعیت پیوست پیغام او بسیار مهیج بود احشای من احشای من پرده های دل من از درد سفته شد و قلب من در اندرونم مشوش گردید ساکت نتوانم شد چون که تو ای جان من آواز کرنا و نعره جنگ را شنیده‌ای شکستگی بر شکستگی اعلان شده زیرا که تمام زمین غارت شده است و خیمه های من بقتتن و پرده هایم ناگهان به تاراج رفته است. میبینید که مکاشفه های نبوتی او مربوط به حجوم بابلی ها بود. او عملا میتونست صدای سپاهیان بابل و فریادهای قوم یهودا رو بشنوه. چون ادامه میده و وحشت های این وقایه رو تجربه میکنه، او میپرسه تا به این طور خواهد بود. او جوابش رو در باب چهار میگیره. خداوند میگه ای اسرائیل اگر بازگشت نمایی اگر نزد من بازگشت نمایی و اگر رجاسات خود را از خود دور نمایی پراکنده نخواهی شد و به راستی و انصاف و ادالت به حیات یهوه و قسم خواهی خورد و امتها خویشتن را به او مبارک خواهند خواند و به وی فخر خواهند کرد. این میتونه تعبیری برای نسل ما باشه. ما در ساختن سلاحها و چیزهای مخرب امروزه خیلی ماهر هستیم. اما برای کارهای درست چی؟ برای انجام کارهای خداپسندانه چی؟ جنایت و خشونت در فرهنگ ما متداول شده به نظر میرسه که ما اصلاً مهارتی در انجام کارهای درست نداریم درست مثل قومی که ارمیا براشون معزه میکرد ما امروز در کلیسا هامون به چنین معزه هایی نیاز داریم معزه دیگری از ارمیا در باب پنج و شش هست و در این کلمات خلاصه شده چیز وحشتناک و ترسناکی که در زمین اتفاق افتاده اینه که که انبیا نبوتای دروغین می کنند کاهنین به صلاح دید خود عمل می کنند و قوم من هم این رو دوست دارند اما وقتی پایان کار برسه چیکار خواهند کرد از کوچک تا بزرگ اونها همه حریص سود نامشروع هستند از نبی گرفته تا کاهن همه دروغ میگویند. اونها به مجروحان قوم من میگویند سلامتی است سلامتی است در حالی که اصلا سلامتی نیست به عبارت دیگه شما نمیتونید با انکار کردن زخم، زخم رو درمان کنید. این انبیاء بزرگ مثل اشعیا و ارمیا و دیگران بر مشکلات تمرکز میکنند و رهبران روحانی، کاهنین و انبیاء رو که صداقت ندارند علت این مشکلات میدونند. ارمیا موعظه‌ای داره که مربوط به تعلیم و تربیت و آماده سازی هست. اگر وقتی که با پیادگان دویدی تو را خسته کردند، پس چگونه با اسبان میتوانی برابری کنی و هرچند در زمین سالم ایمن هستی در تقیان اردن چه خواهی کرد برای اینکه مردم را برای خدمت به مناطق مشکل بفرستید اصل درستینه که قبل از اینکه اونها رو برای خدمت بفرستید مطمئن بشید اونها آماده شدن. در عهد جدید اصولی برای تعیین صلاحیت برای رهبران کلیسا هست عهد جدید میگه اجازه بده قبلا اونها آزموده بشن این اصل خوبی برای خادمان یا شبانان هست. اونها باید قبلا آزموده بشن. این چیزیه که ارمیا در باب دوازده آیه پنج میگه. تاکید مهم دیگری در پیام های ارمیه است که در تمامی موعزه هاش به چشم میخوره. مثلا ارمیا گفته و خداوند مرا گفت اگرچه هم موسا و سمویل به حضور من میستادن جان من به این قوم مایل نمیشد. ایشان را از حضور من دور انداز تا روند، رون و اگر به تو بگویند به کجا بیرون رویم به ایشان بگو خداوند چنین می‌فرماید آنکه مستوجب موت است به موت آنکه مستحق شمشیر است به شمشیر و آنکه سزاوار قهت است به قهت، آن آنکه لایق اسیری است به اسیری و خداوند می‌گوید بر ایشان چهار قسم خواهم گماشت یعنی شمشیر برای کشتن و سگان برای دریدن و مرغان هوا و حیوانات صحرا برای خوردن و حلاک ساختن و ایشان را در تمامی ممالک جهان مشوش خواهم ساخت به سبب منسی ابن حزقی پادشاه یهودا و کارهایی که در اورشلیم شلیم کرد این خبر بدی هست وقتی اونها به جایی رسیدند که باید داوریی مثل اصارت رو تحمل میکردند، این این ای بود که به مردم داد چون که چیزی بود که خداوند به او گفت بگوید اگرچه به همراه اون موعظه ها او همیشه پیام و امیدش رو میداد، او موعظه‌ای در باب 16 داره که تا حدودی به موازات اول قرنتیان باب هفت هست. وقتی که شما باب ازدواج اول قرنتیان باب 7 ترحت جدید رو میخونید، گاهی احساس میکنید که پولس رسول باید یک پیرمرد عذب تنگ نظر بوده باشه. و یا مشکل جدی با زنان داره که اینطور طور در درباره ازدواج حرف میزنه. او باب ازدواج رو اینطور باز میکنه برای مرد بهتره که هیچ زنی رو لمس نکنه اما او میگه اگر نمیتونید خودتون رو کنترل کنید اگر فکر میکنید که دوچار انحراف میشید پس برید و ازدواج کنید به نظر میرسه که این تنها دلیلی هست که او برای ازدواج ذکر میکنه به نظر کمی احمقانه میاد تا اینکه بقیه باب رو میخونید و در و 26 متوجه میشید که پولوس مینویسه حس گمان می کنم که به جهت تنگی این زمان انسان را نیکوان است که همچنان بماند وقتی پولس اول قرنتیان هفت رو مینوشت اونها در جفا بودند معلوم بود که مردم قرنتس برای اون نامه ای نوشته و از او سوال کردند آیا بچه های ما میتونند در چنین وضعیتی ازدواج کنند حالا اگه قرار هست کسی تهمه شیران بشه اگه قرار کسی کشته بشه و اعدام بشه اگر او مجرد باشه تحمل این وضع براش آسونتر خواهد بود اگر شخصی متأهل باشه و پنج بچه داشته باشه تحمل این وضع براش کمی سختتر میشه سختترین قسمت این مسئله اینه که ببینید این وضعیت برای عزیزانتون پیش میاد این سختتر از اینه که شخص خودشون رو تجربه کنه با توجه به اون وضعیت جفا هست که پولس چنین موزی اتخاذ میکنه و میگه به جوانانتون بگید اگر ازدواج نکردند ازدواج نکنند و اگر ازدواج نکنند هیچ ارتباط جسمی نباید داشته باشند اما اگر نمیتونن خودشون رو کنترل کنن به جای اینکه به فساد اخلاقی و به آتش شهوات بیفتند بهتره که برند و ازدواج کنن به هر حال بهتر این هست که ازدواج نکنند تمامی اون نصیحت ها با توجه به شرایط زمانی در نخستین روزهای مسیحیت بود در ارمیا باب 16 چون او در دوره فاجعه حجوم و اسارت معزمی کرد چون این نصیحتی به مردم کرد و به اونها گفت که برای خود زنی مگیر و تو را در این مکان پسران و دختران نباشد. زیرا خداوند درباره پسران و دخترانی که در این مکان مولود شوند و درباره مادرانی که ایشان را بزایند و پدرانی که ایشان را در این زمین تولید نمایند چنین این میکوین. به بیماری های خواهند مرد. برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و دف نخواهند شد بلکه بر روی زمین سرگین خواهند بود و به شمشیر و قحط تباه خواهند شد و لاش های ایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمین خواهد بود در چنین اوضاع و احوالی نصیحت ارمیا این هست که ازدواج نکنید در باب 17 ارمیا موعظه بزرگی دیگری می کند که تقریبا مثل یک دعا هست. او میگه خداوند مرا شفا بده پس شفا خواهم یافت. مرا نجات بده پس ناجی خواهم شد. زیرا که تو تسبیح من هستی. تصور بر این هست که واقعا نجات پیدا نمی کنیم مگر اینکه خدا ما رو نجات بده و واقعا شفا پیدا نمی کنیم مگر اینکه خدا ما رو شفا بده. راه هست که فقط خدا می تونه در اون زمانها شفا بده. ما گاهی برای نجات در بود افقی به مردم مراجعه می کنیم. برای انواع شفاها نزد مردم میریم اما بعد از گذشت سالیان و تجربیات متوجه میشیم که زمانهایی هست و راههایی هست که در اونها نجات تنها از طرف خدا میاد تنها خداست که میتونه ما رو شفا بده وقتی به جایی رسیدید که به چنین آگاهی دست پیدا کردید اون وقت مثل ارمیا موعظه و دعا میکنید ای خداوند مرا شفا بده پس شفا خواهم یافت مرا نجات بده پس ناجی خواهم شد زیرا که تو تسبیح من هستی موعظه بزرگ مسیحایی در باب 31 تا 33 ارمیا هست. اشعیا یکی از بزرگترین واعظین مسیحایی بود ارمیا به اندازه اشعیا بر نبوت‌های مسیحایی تاکید نمی‌کنه اما او هم نبوت‌های مسیحایی به ما میده و این یکی از زیباترین اونهاست که اینطور شروع میشه من تو را به محبت ازلی دوست داشتم از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم حالا اینجا بخش نبوتیش هست. زمانی خواهد آمد که من شریعتم را درون آنها خواهم نهاد و آنها را بر دلهایشان خواهم نوشت و من خدای آنها خواهم بود و آنها قوم من و بعد آمدن مسیح رو نبوت میکنه اگر با جریان تاریخ یهود که در این دوره بررسی عهد قدیم مطالعه کردیم آشنایی داشته باشید میدونید که تمامی این انبیا از پراکندگی و سرگردانی قوم خدا بعد از اسارت خبر دادهاند. اونها همینطور بازگشت از این پراکندگی رو هم نبوت کردند. بازگشت از این پراکندگی نه تنها در زمان بازگشت از بابل اتفاق میفته بلکه پراکندگی و بازگشت دیگری هم نبوت شده. ما میبینیم که این بازگشت در نسل ما اتفاق میفته. در سال 1948 دیدیم که اسرائیل یک ملت شد. بنابراین میدونیم که یک بازگشت جغرافیایی به سرزمین اسرائیل وجود داشته. به هر حال همه این انبیا در معطنهایی مثل این بازگشت روحانی اسرائیل را رو هم نبوت کردهاند و این اتفاق هنوز نیفتاده اگر می خواهید بدونید که در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد اسرائیل رو زیر نظر داشته باشید و نبوتهای مسیحایی کتابهای انبیا رو تحت نظر داشته باشید و اون موقع خواهید فهمید که در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد دانشجویان عزیز وقت ما به پایان رسیده. کاربورت های شخصی ارمیا زیاد هست اما بذارید با این یکی جلسمون رو به پایان ببریم. یهو و خدا به شما میگه من تو را به محبت ازلی دوست داشتم از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم خدا امین هست و شما را با محبت ازلی دوست داره آیا هدیه محبت او رو دریافت کردید؟ اگر دریافت نکردید امروز وقتشه که اون رو دریافت کنید و اگر دریافت کردید فقط به زبان نگید، بلکه به شایستگی اون رفتار کنید. عزیزان، چه پیغام حیرت انگیزی توسط ارمیای نبی از خداوند گرفتیم. خدا قوم خودش رو دوست داره و مایله که من و شما وفاداران اون رو خدمت کنیم. مایه خوشوقتیه که کتاب مقدس رو به همراهی شما مطالعه می کنیم. تا برنامه بعدی دعا می محبت اون رو تجربه کنید و با دیگران نیز. تقسیم کنید.